بخش هشتم جایگاه خاطرات همان گونه که دیدید بازشناسی یک خاطره به معنای نظر کردن به گذشته است ما اغلب اوقات این عمل روانی را انجام می دهیم. ولی آن لحظه در گذشته ای را که این خاطره اتفاق افتاده دقیقا مشخص نمی‌سازیم در این حال خاطره تا زمانی که جایگاه آن مشخص نشده و تاریخ آن معین نگردد کامل نیست برای این کار، ما آن را به برخی نکات که در مقیاسهای اجتماعی و روانی هستند، نظیر تاریخ تولد، خاطرات خانوادگی، تحصیلی، دانشگاهی، هرفعی و غیره و به عنوان چهارچوب زندگی گذشته ما محسوب می شوند، پیوند می دهیم. ما آنها را روی خطی از گذشته که بین این مقیاس قرار دارد به نوسان دارا و آن را به یکی از آنها نزدیک و از دیگری دور کرده و در مقایسه با آنها زمانبندی می کنیم. یاداور می شویم جایگاه و محل دقیق خاطرات در گذشته باعث نمی شود که برخی از توهمات روی مدت زمان وقایه تأثیر نگذارند. به طور کلی حافظه ما مدت را در زمان گذشته کوتاه می‌سازد. سالی که گذشته همواره در خاطرات ما تر از چیزی است که واقعاً بوده، زیرا خاطره این سال به چند یا چندین واقعه برجسته محدود می‌شود و بقیه فراموش می‌شوند. از سوی دیگر، همین تنوع زمانی هر اندازه که وقایع بیشتری در آن گنجانده شده باشد، به نظر ما طولانی‌تر می‌آید. از روی این نکته میتوان به این موضوع پی برد که دریافت حسی و خاطرات با یکدیگر در تضاد هستند در عالم واقعیت مدت زمانی که جریان دارد هر اندازه خالی تر باشد طولانی تر و هر اندازه که پرتر باشد تر به نظر میرسد به این ترتیب 20 دقیقه انتظار برای اتوبوسی که نمی آید بدون آنکه هیچ گونه مشغولیتی جز فکر کردن در این مدت وجود داشته باشد بسیار طولانی تر به نظر میرسد تا بیست دقیقه‌ای که پر از مشغولیات متنوع و سرگرم کننده باشد. اما در مقابل در حافظه عکس این حالت وجود دارد. یعنی این زمان خالی که در مدت عبور خود آن اندازه طولانی به نظر میرسید در حافظه دقیقا به همین دلیل که خالی بوده و هیچ هیچگونه واقعی را که بتواند خود را روی آن تثبیت کند در آن نمیابد به سادگی محف می شود، برعکس، یک زمان پر و انباشته از وقایه که در حال گذراندن آن اصلا مدت را احساس نکرده ایم، در خاطرات باقی می مانند. بخش نهم، تدائی اندیشه ها تصاویری که به حافظه ما می آیند، معمولاً به حالت منفرد ارائه نمی شوند. به عنوان مثال، دیدن یا خاطره جسمی که متعلق به شخصی باشد که با ما آشناست، به سرعت صورت این شخص، رفتار، حرکات، صدا، لباسهای او و غیره را به یاد ما بنابراین بین زمیر خداگاه ما، روابطی از قبیل زمانی که یکی از این حالات ظاهر می شوند وجود دارد و این حالت خود به خود و به صورت اتوماتیک ظهور نیز منجر می شود. همان گونه که قبلا متذکر شدیم، این پدیده است که در روانشناسی با اصطلاح تدائی اندیشه ها شناخته می شود. در واقع، دو کلمه تدائی و اندیشه، خصوصاً برای معرفی عمل روانی که آنها آن را معرفی می کنند، بد انتخاب شده اند. ابتدا کلمه تدایی که به شکلی دور و غیر مستقیم خود عمل را تفسیر می کند، در مرحله بعد کلمه اندیشه که امروزه نشان دهنده افکار مبهم و کلیست و یا به بیان دیگر مفاهیم را نشان می دهد. در صورتی که تدائیم می تواند بین حالات مختلف روانی از قبیل اندیشه های مبهم و تصاویر کاملا محسوس تصاویری یک نواخت و تصاویر متنوع حواس، یافته حسی، حیجانات، احساسات، حرکات و غیره نیز وجود داشته باشد. هرچه باشد، ما این فرمول را که برای استفاده اختصاص یافته، حفظ کرده و بدون آنکه وارد بحثهایی در رابطه با نوع ارتباطات تدائی کننده بین طرفداران این عقیده و پیروان مباحث اقلایی وجود دارد شویم، سه شکل اصلی تدائی اندیشه ها، یعنی تدایی از طریق اتصال، تدایی از طریق شباهت و تدائی از طریق تقابل را مورد بررسی قرار می دهیم. هنگامی که دو یا چندین حالت آگاهی در یک زمان به ذهن ما میرسد یا اینکه به صورت پیاپی وارد ذهن می شود این حالت را تدایی از طریق اتصال مینامیم. لذا این اتصال میتواند به صورت خود به خود باشد. همانطوری که مثلا درک حسی و سپس یادآوری یک صورت یک خانه، یک منظره و غیره انجام میگیرد. هنگامی که این اندیشه یگانه باشد به صورت متوالی است. افکار یکی پس از دیگری با حواس یا تصاویر مجزا شکل یک گروه کما بیش طولانی فرزند در رابطه با یادداشت‌هایی که از یک قطعه موسیقی برداشته شده یا عبیاتی که از بر شده باشند و غیره را به خود می گیرند. این قانون متوالی بودن حالات ذهنی که لیب آن را تسلسل تجربی تصاویر نامیده و دائماً در انسان تصاویر ذهنی می در حیوانات نیز به چشم می‌خورد. به این ترتیب سگ شکاری، هنگامی که می صاحبش تفنگ خود را بر یا پوتینهای خود را آماده می سازد، شروع به پارس کردن و ابراز خوشحالی می کند. سگ در این حالت منتظر بقیه غذایا یعنی بیرون رفتن، جست و خیز، تیراندازی، دنبال کردن شکار و غیره است. به هر صورت چه اتصال در فضا، اتصال خود به خود، یا در زمان اتصال متوالی انجام گیرد کافیست که اتصالی به صورت خداگاه وجود داشته باشد تا تداعی شکل بگیرد از سوی دیگر میتوان مشاهده کرد که تداعی از طریق اتصال مانند سایر اشکال تدایی ذهنی منتج از توالی اندیشه‌هایی که به طور مکانیکی با یکدیگر متحد میشوند نیست هر تدایی بیشک بستگی به تدائی قبلی دارد ولی همچنین از تمام زمیر ناخودآگاه برمیخیزد. به عبارت دیگر ما از میان تدائی های ممکن آنهایی را به صورت خودکار انتخاب می کنیم که سازگاری بیشتری با مجموعه افکار، احساسات و گرایشهای ما که در همان لحظه زمیر خودآگاه ما را اشغال کرده اند داشته باشند. به دنبال آن تداعی اندیشه ها از طریق اتصال گرایش های اساسی ذهن را برمی انگیزد زیرا این گرایش ها هستند که اکثر تداعی ها را هدایت می کنند این موضوع را از طریق آزمایشی که در ادامه خواهد آمد و توسط آلفرد بینه انجام شده است میتوان مشخص کرد وی به کودکان شیعی را نشان داده و از آنان میخواهد که آن را به عنوان سوژه برای یک داستان انتخاب کنند قدرت درک هر کودک باعث ایجاد تدایی اتصالی متنوعی بر حسب ساختمان فکری انفرادیشان می شود. در این میان گروه تشریح کننده فقط به تشریح ساده و خالص آنشه اکتفا می کنند. گروه بیننده توضیحات و تعابیری را به آن می افزاید و گروه متفکر هر چیزی را که با آنشه رابطه ای دارد تعریف می کنند. و سرانجام نوع حیجانی و احساساتی را که آن جسم در ایشان برمیانگیزد اظهار و توصیف می کنند. ساده تر از آن، همان گونه که آلفرد بینه نیز این کار را انجام داده، می توان به دانش آموزان جملات ناتمامی را ارائه کرد تا آن را تکمیل کنند. در این حالت مشاهده می شود که در اکثر اوقات کلمات افسوده شده نشاندهنده تمایلات کلی ذهنی شخص هستند. یک روحی شاعرانه؟ جملات را با تعریف‌های شاعرانه، یک روحیه فعال با قضاوت‌های عملی و افراد دیگر با تعابیر دیگری کامل می‌سازند. آلفرد بینه جمله ای را با ستاره آغاز می‌کند. شخص شاعر مسلک پاسخ می‌دهد ستاره گویا مرا به سوی سرنوشتم هدایت می‌کند. و شخص فعال بدون احساسات شاعرانه می‌نویسد ستاره قطبی نشان‌دهنده جهت شمال است. صورت دوم تدایی بر اساس شباهت شکل می گیرد. این نوع تدایی می تواند روی کیفیت اجسام به وجود بیاید یک مارپیچ و یک وسیله باز کردن چوب پنبه به یکدیگر شباهت دارند این شباهت گاهی اوقات روی کلمات حضور پیدا می کند ولی در مورد خود اجسام نیست این اصل اولیه نوعی بازی با کلمات است که بر اساس شباهت صدا یا کلماتی که دو معنا دارند پایه‌ریزی شده است شباهت همچنین می تواند در رابطه با کمیت به عنوان مثال تعداد و مقدار نیز باشد. بوشه می نویسد هنگامی که یک شاعر شرقی تعداد ساکنین را با تعداد دانه های شن ساحل مقایسه می کند نوعی تداعی اندیشه ها را که بر اساس شباهت اعداد استوار است انجام می دهد. زیرا ساکنین یک منطقه و دانه های شن به هیچ وجه با یکدیگر شباهتی ندارند. مگر در مورد تعدادشان شباهت میتواند در مورد روابط مشابهی نیز باشد که عناصر مختلف دو جسم ترکیبی با یکدیگر دارند در عین حال که ممکن است این دو جسم با یکدیگر تفاوت زیادی داشته باشند این همان حالتی است که شیلر در یک نمایش نامه به نام رقص هنگامی که چرخش رقاص را با جریان گردش سیارات مقایسه میکند از آن سود میبرد و سرانجام شباهت ممکن است از حیجاناتی که با فکر یا تصویری تو است ناشی شود. در این مورد تئودولریبور رویا را این گونه تعریف می کند. قدم زدن در جاده‌ای که انتحان ندارد و توسط نور کور پوشیده شده است. سپس یک کوه ناهموار در میان مردم شروع به صحبت کردن با زبانی ناشناخته می مسلما هیچ گونه شباهت اساسی بین این تصاویر متنوع متوالی وجود ندارد. ولی همه اینها مربوط به یک حالت احساسی مشترک است که از خستگی ناشی می شود. در مجموع اگر تمام تدایی های ایجاد شده از طریق شباهت را تجزیه و تحلیل کنیم مشاهده می کنیم که آنها شامل اعمال متوالی زیر هستند. یک تدایی عناصر تصویر محرک دو تداخل این عناصر با سایر عناصر شبیه به آنها که قبلا درک شده اند سه، تدایی از طریق اتصال که عناصر غیر مشابه را فرا میخواند. و سرانجام سومین شکل تدایی اندیشه ها تدائی از طریق تقابل است بدین ترتیب به یاد آوردن یک زمستان سخت ممکن است یاد تابستان شدیدن گرم را زنده کند خاطره یک موجود کوتاه قد و ریزنقش اندیشه یک شخص قول‌پیکر را به وجود بیاورد و خاطره یک عمل جبران کننده خسارت می تواند مسئله سوداور را در فکر انسان بیدار سازد و الی آخر در واقع اگرچه باور نکردنی به نظر میرسد ولی تقابل یکی از موارد خاص شباهت است فقط در میان چیزهایی که از جهاتی با یکدیگر شبیه هستند تقابل ایجاد میشود زیرا بین چیزهای کاملا متفاوت نه تنها تناقض بلکه شباهتی نیز وجود ندارد به عنوان مثال یک ازدواج میتواند بر اثر تقابل اندیشه طلاق را نیز به ذهن بیاورد ولی مسلما دندان درد را به یاد ما نخواهد آورد یک ساختمان قدیمی میتواند آثار باستانی یونان را به خاطر ما بیاورد ولی هرگز یک اسب مسابقه را تداعی نخواهد کرد و غیره بنابراین این از طریق تقابل به تداعی از طریق شباهت منتهی میشود سوای سه شکل اساسی تدائی اندیشه ها اشکال دیگری نیز وجود دارد که ما آنها را فهرستوار نام میبریم. تدائی منحسرن گفتاری که فقط روی های شبیه به همان کلمات تدائی شده تکیه دارد. به عنوان مثال ترس و ترسو، بدبخت و بدبختی. تدائی هایی از طریق فراخانی یک فکر کلی تر. به عنوان مثال قرمز و رنگ. سبزی و مواده غذایی پیوندهای علیتی و به عبارت دیگر آنهایی که پیوند علت و معلول و یا کاربرد آن را ایجاد می کنند. به عنوان مثال، زخمی و رنج کشیدن، جر و بحث و مشت زدن، جوهر و نوشتن. ارتباطهای کیفیتی که شامل نسبت دادن یک کیفیت به موضوعی که ممکن است آن منصوب باشد. در اینجا، کیفیت های ملموس را که اتصال نزدیکی با پیوند دارند، مثال، سفیدی و برف. کیفیت های محسوس واکنش های ذهنی، به عنوان مثال شاخه و میوهها، و کیفیت هایی که یک عمل را مشخص و تعیین می کنند، مثلا ضربه زدن و شدت آن، و تدائی هایی که باعث قضاوت در مورد ارزش می شوند، مثلا الکلیسم و رزالت مشخص می شوند. در فراز بعدی، شناخت نوع تدایی افکاری که بر ذهن شما غالب و سودمند است، از نظر عملی خواهید دید و در فصل چهاردهم نظر شما را متوجه مراقبت از تدائی های افکار در کودکان می بخش دهم هم اندیشه‌های های به اندیشه رفته به عنوان آزمون های شخصیتی روش های مختلف تداییی اندیشه که در مورد آنها بحث کردیم، در شرایط خاصی این امکان را به وجود میآورند که شکل شخصیتی و هوشی یک فرد را معین سازیم. بنابراین از این آزمایشها میتوان تحت شرایطی استفاده کرد. در وهله اول یاداور می‌شویم میشویم که این آزمایشها روحیه با واکنش عمومی را از روحیه تحلیلی متمایز می سازد. اولین گروه ترجیحاً، تداعی الیت و کیفیت را انجام می‌دهند مشکل این گروه اکتفای بیش از حد به شم خود و عدم تلاش فکری در مورد هر یک از جنبه‌های مسئله است که باید حل شود دسته دوم بیشتر تدائی های تقابل و اتصال ساده را به کار می‌برند آنها گرایش به تمرکز توجه خود روی جزئیات دارند از سوی دیگر اشخاصی که در آنها تداییها از نوع اتصال محض است معمولا خود را با رفتاری نسبتاً انفعالی به سمت محسوسات جهت دهی می‌کنند که در نتیجه فعالیت روحی بسیار زیادی را باعث نمی‌شوند. اشخاصی که های تشابه و های گفتاری را با یکدیگر به کار می‌برند، معمولا روحیه ای سطحی داشته و به ندرت افکار شخصی دارند. در مقابل، افرادی که ترجیحاً از های تقابل استفاده می‌کنند، روحیهی منتقدانه داشته و دوست دارند به افکار خیش برتری ببخشند و گرایش به تحمیل کردن خود دارند. اما گروهی که تدایی نظرات را از طریق مطرح کردن یک نظریه کلی تر نسبت به فکر قبلی انجام می دهند، دارای روحیه های مپهمی هستند. اینگونه افراد برای حدس و گمانهای روشن مهارت خوبی دارند. اما در عین حال اگر بیش از حد از واقعیت جدا شوند این خطر وجود دارد که در مسیرهای نامناسب و عجیب و غریب بیفتند. این مسئله در مورد روحی های و متفکر اتفاق میافتد. اینگونه افراد تدایی های الیت را ترجیح می دهند، اما نمانند روحی های عملی که تدایی های و کاربورد را مطرح می سازند. و سرانجام، روحی هایی که به سادگی تلقینات بیرون را پذیرا شوند، غالبا از پیوند کیفیت‌ها سود می‌برند.